به نام خدای یگانه مهربان سلام اونوارم فرصتی پیدا کنید که فارغ از رنجها، خستگیها و روزمرگیها نقل افثانه ما رو بشنوید و لذت ببرید چرا که افسانهها برای این خرق شدند که اونها رو بشنویم، بخونیم و دغدغه ها و حتی خودمون خودمونو به دست فراموشی بسپاریم و ما افثانی این هفته ما افسانهای از مردمان سرزمین ایتالیا به نام آهوی جادو شده برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایتالیا گردآورندگی این کتاب خانم آن مکدونل و خانم رزوان خورمیان اونو ترجمه کردن بشنوید؟ در روزگاران گذشته در سرزمین ایتالیا پادشاهی به نام جنن در سرزمین دور حوپرانی میکرد. پادشاه افسانی ما فرزندی نداشت و تنها آرزوش این بود که فرزندی پیدا کنه. اون همیشه دعا کرد که خداوند آرزوش رو برآورده کنه. به فقرا کمک میکرد و از اموال و داراییش به دیگران میبخشید. سالها گذشت و سرانجام پادشاه از برآورده شدن آرزوش که داشتن فرزند بود ناامید شد پادشاه تصمیم گرفت دیگه به کسی کمک نکنه و هر کس برای کمک پیش اون میومد با خشم و ناراحتی از غص بیرونش می کرد. یکی از همین روزها مردی از اونجا میگذشت. او اون نمی دونست که اخلاق پادشاه تغییر کرده شاید هم می دونست ولی میخواست دوباره پادشاه رو امیدوار کنه. بنابراین رفت سراغ پادشاه و از پادشاه خواهش کرد که به اون کمک کنه. چرا که خیلی فقیر بود. اما پادشاه خشمگین شد و با عصبانیت گفت برو برو خدا روزیت رو جای دیگهای بده. اون روزهایی که من اموالم رو به امثال تو میبخشیدم گذشت. برو برای که تحمل هیچ کس رو ندارم مرد آروم پرسید جناب پادشاه باشه به من چیزی ندید فقط فقط بگی چرا از بخشش هایی که به این و اون کردید پشیمونید و دیگه مایل نیستیم به دیگران کمک کنید پادشاه که کمی آرون گرفته بود با ناراحتی گفت من من به امید این که روزی خداوند آرزوم رو که داشتن فرزند بود برآورده کنه سالهای سال به نیازمندان کمک کردم ولی بعد از این همه سال آرزوی من برآورده نشده و و دارایین رو مفت به هدر دادم مرد آرون گفت جناب پادشاه این حرف رو نزنید خداوند هیچ کاری رو بدون مسئله انجام نمیده و لطف و مهربونیش بیشتر از اونیه که ما فکر می کنیم. شما نباید ناامید بشید من من به شما قول میدم خداوند به خاطر اون همه انفاق و بخشش هایی که کردین حتما آرزوی شما رو برآورده می کنه. سر این قضیه من تمام زندگیم رو گرو میذارم. پادشاه با شنیدن حرفهای اون مرد کمی امیدوار شد و گفت اگه واقعا حرفهای تو درست باشه من نصف سرزمین پادشاهیم رو به تو میبخشم مرد از کیسهای که به همراه داشت سیب سرخی رو بیرون آورد و پادشاه داد و گفت قربان این سیب رو به بانو ملکه بدین شاید به لطف و ازن خداوند همین روزها خبر باردار شدن بانو ملکه رو بشنویم و شهر رو چراغونی کنیم شما شما جناب پادشاه نباید از لطف پروردگار ناامید بشید مرد اینو گفت و از پادشاه خداحافظی کرد و رفت پادشاه بعد از رفتن مرد سیب سر رو به یکی از کنیزان ملکه داده گفت اینو به ملکه بده و بگو حتماً بخوره کنیز سیب سر رو گرفت و رفت سراغ ملکه ملکه در خواب بود و کنیز که بوگ مطبوع و قرمزی سیب حسابی وسوسش کرده بود تاقت نیاورد و نصف اونو خورد و نصف دیگر رو بالای سر ملکه گذاشته و چند ساعت بعد که ملکه از خواب بیدار شد کنیز رفت سراغش و گفت که پادشاه این نصف سیب رو برای ملکه فرستاده و سفارش کرده ملکه حتما اونو بخوره. ملکه هم سیب رو از کنیز گرفت و اونو خورد. مدتی گذشت این که بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه و نه ثانیه ملکه و کنیز هر دو صاحب پسری شدن. اسم شاهزاده رو فنزو و اسم پسر کنیز رو کنلر گذاشتن پسرها اونقدر به هم عادت کرده بودن که ملکه وقتی دید پسرش اونقدر با پسر یک کنین سمیمی و دوسته آتش حسادت و غرور وجودش رو پر کرد و تصمیم گرفت دوستی و سمیمیت بین پسرها رو کم کنه روزی شاهزاده فنزو تصمیم گرفت با دوستانش به شکار بره. اون آتشی در آتشتان اتاقش درست کرد و مشغول زوب کردن سر برای ساختن گلوله های توفنگش شد. و بعد از چند دقیقه برای کاری از اتاق خارج شد. در همین موقع ملکه وارد اتاق شد تا ببینه پسرش شاهزاده فنزو چیکار میکنه؟ اما کسی رو بجز جز کنلر، یا همون پسر کنیزش اونجا ندهید مده یه آن تصمیم گرفت کنلر رو نابود کنه و با این نیت خم شد و سورپای زوب شده یه داغ و سوزان رو به صورت کنلر بیچاره فوت کرد سورپای زوب شده صورت کنلر رو به شدت سوزوندن و چهرش رو بسیار زشت کردن در همین موقع شاهزاده فنزو وارد اتاق شد ملکه که از دیدن پسرش جا خورده بود وانمود کرد که اومده تا اونو ببینه و بعد از بوسیدن پسرش اونجا رو تر کرد. کنلر کلاهش رو روی صورتش کشید و از ماجرای سوختن صورتش چیزی به فنزون نگفت اون در حالی که صورتش به شدت میسوخت و درد میکشید همونجا ایستاد تا کار ساختن گلوله ها تموم شد بعد به شاهزاده گفت فنزوچان من باید به یه سفر طولانی برم فنزو تعجب کرد و دلیل این تصمیم ناگهانی رو ازش پرسید کنلر گفت فنزوی عزیز دلیلش رو نپرس فقط همین رو بدون که من مجبورم تو رو ترک کنم خدا می دونه برای که از تو نشم حاضرم جونم رو هم فدا کنم ولی چاره ای ندارم خدا نگهدارت. همیشه منو به خاطر بسوار. خدا نگهدار. اونا همدیگر رو در آغوش کشیدند و عشک ریختند. بعد کنلر به اتاقش رفت و لباسهای جنگیش رو پوشید و شمشیرش رو برداشت و اسبش رو از استبل بیرون برد. وقتی پاش رو در رکاب اسب گذاشت و حرکت کنه شاهزاده فنزو اش ریزان گفت: کنلر عزیزم نبودن تو سخت منو دلتنگ میکنه من نگران تو هستم نمیدونم چه ای در انتظار تو اگه خطری تو رو تهدید کنه و مشکلی برات پیش بیاد من چجوری بفهمم چجوری به کمکت بیام دوست عزیز کنلر از اسب پیاده شد و به فنزو گفت بیا با هم اطراف بریم میخوام چیزی رو نشونت بدم چیزی که با دیدن اون میتونی به وضعیت آینده پی ببری و بفهمی من در چه شرایطی هستم اونا کمی از قصر فاصله گرفتن و به جایی رسیدن که چشمه جاری بود کنلر گفت فنزوی عزیزم تو با دیدن این چشمه جاری میتونی بفهمی که زندگی منم جریان داره اگه دیدی این چشمه زلال و آرومه بدون که زندگی منم آرومه. و اگه دیدی این چشم گلآلوده بدون که من با مشکلی روبرو شدم آاگهم دیدی این چشم کثیفه بدون که من در سختی به سر میبرم و زندگیم رو پایانه بعد از این حرف کنلر کمی دورتر رفت و نهالی رو به فنزو نشون داد و گفت فنزوی عزیز هر زمان دیدی این نحال سبزه بدون من در اوج شهرتم اما وقتی دیدی نهال پج مرده است بدون که آینده من در خطره. اما اگه دیدی که نهال کاملا خشکه میتونی برای من از خداوند طلب آموزش کنی کندر اینو گفت و به طرف غص برگشت و چند دقیقه بعد سوار اسب شد و از اونجا دور شد و فنزوی شاهزاده با چشمای اشبار اونو بدره کرد. کنلر رفت و رفت و رفت تا اینکه به سرزمینی به نام لانترلیس رسید در همون زمان پادشاه سرزمین لانترلیس مسابقه باشکوهی رو برای ازدواج دخترش برپا کرده بود کنلر تصمیم گرفت در اون مسابقه شرکت کنه اون شجاعانه تمام قهرمانهای دیگر رو که از جاهای دور و نزدیک اومده بودن شکست داد و در مسابقه برنده شد و در نتیجه فنزیا دختر پادشاه به همسری اون درآمد و به همین مناسبت جشن بزرگی برپا شد. کلر چند ماهی در سرزمین لنگرلیست در نهایت خوشی زندگی کرد تا اینکه یه روز تصمیم گرفت به شکار بره. کنلر فکرش رو با پادشاه در میان گذاشت. پادشاه گفت: باید خیلی هوشیار باشیم خیلی چون در جنگل آدم خاری زندگی میکنه که هر روز خودش رو به یک شکل در میاره یه بار به شکل گرد یه بار به شکل شیر یا به شکل گوزن و خرگوش و حیوانای دیگه و با هزار حقه و کلک افرادش رو تو غارش به دام میندازه و میخوره پادشاه اینا رو گفت اما کنلر افسانه ما به راهنمای ها و اندرس های پادشاه توجهی نکرد و برای شکار به طرف جنگل براه افتاد کنلر رفت و رفت تا به جنگلی که آدمخار در اون زندگی میکرد رسید آدمخار تا اونو دید فورا خودش رو به شکل آهوی زیبا درآورد رو و اونقدر کنلر رو به این طرف و اون طرف کشوند تا اینکه اونو درست در وسط جنگل به دام انداخت جایی که برف زیادی اونجا رو پوشونده بود کنلر که به دنبال سرپناهی میگشت قاری رو دید و وارد اون شد قافل از اینکه این غار همون غار آدم خاره بود کنلر از شدت سرما بیهز شده بود بنابراین چوبهایی رو از اطراف جمع کرد و با اونا آتیش بزرگی برافروخت. بعد همونطور که کنار آتیش ایستاده بود تا لباساش رو خوش کنه آهو به دهنه غار اومد و گفت ای مرد شجاع ممکنه به من اجازه بدی بیام و خودم رو کمی گرم کنم؟ کنلر که خیلی مهربون بود گفت خوش اومدی، نزدیکتر بیا آهو که همون آدم خاره باشه گفت اما من میترسم شاید تو قصد داشته باشی که من بکشی ها؟ کنلر با مهربونی گفت نه، نه، از هیچ چیز نترس به من اعتماد کن من کاری به کارت ندارم، بیا بیا خودتو گرم کن آهو گفت حالا من یک کمی مطمئن شدم ولی تا شمشیرت رو کنار نذاری من داخل نمیاد. شاید شاید قصد داری با اون شمشیر منو بکشی ها کنلر که دلش میخواست با اون آهو دوست بشه شمشیرش رو کنار گذاشت آهو که دید کنلر بیدفاع و بیصلاح شده شکل واقعیش رو نشون داد و شد همون آدمخواری که بود و در یک آن به کنلر حمله کرد و اونو به زمین انداخت و بعد به گوشه برد و با سنگ روی اونو پوشوند تا سر فرصت اونو بخوره اما بشتبید از شاهزاده فنزو شاهزاد فنزو همیشه صبح و عصر به چشمه و نگاه می کرد تا از حال دوستش کنلر با خبر بشه اون روز وقتی به چشمه نگاه کرد دید که گلالوده و به سراغ نهال که رفت دید اونم پش شده شاهزاده فورا فهمید که آیندگه بدی در انتظار دوستش کنلره بنابراین بدون اینکه به پدر مادرش خبر بده خودش رو سراپا مسلح کرد و با سرعت سوار اسب شد و با دو سگ شکاری به راه افتاد. فنزو به دنبال کنلر همه جا رو جستجو کرد. رفت و رفت تا به سرزمین لانگترلیس رسید و دید که اونجا هم برای کنلر عزاداری میکنن. چون اونا فکر میکردن که کنلر مرده و وقتی فنزوی شاهزاده رو دیدن به خاطر شباهت بسیاری که با کنلر داشت با خوشحالی به استقبالش اومدن و فنزیا همسر کنلر با گریه گفت کنلر عزیزت حالا کجا بودی؟ فنزوی شاهزاده که متوجه اشتباه اونها شد فوراً به اونها گفت من فنزو هستم دوست کنلر بله بله ما خیلی به هم شبیهیم شما حق دارید منو با کنلر اشتباه بگیرید ولی من دوست اونم و اومدم تا کنلر عزیزم رو پیدا کنم و از خطری که تهدیدش میکنه نجاتش بدم و بعد از فنزو همسر کنلر خواست تا به اون بگه کنلر کجا رفته و همسر کنلر گفت که همسرش برای شکار به جنگل رفته و آدم خار اونو خورده شاهزاده فنزو هم بدون فوت وقت به جنگل رفت و همون اتفاقی که برای کنلر افتاده بود برای اونم افتاد. فنزو وقتی به غار رفت اسلحه سکها و اسب دوستش کنلر رو دید و متوجه شد که اون به دام آدم خار افتاده. بنابراین وقتی آهو به اون گفت که سکهاش رو ببنده فنزو سکها رو به جان آهو انداخت و سکها هم آهو رو تکه تکه کردند. فنزو به دنبال رد پایی از دوستش گشت و صدای ضعیفی رو از زیر سنگ ها شنید بعد به سرعت سنگها رو جا جا کرد و کنلر و بقیه کسایی را که در دام آدم خار گرفتار شده بودند نجات داد دو تا دوست همدیگر رو در آغوش کشیدند و به خونه برگشتند کنلر وقتی به خونه رسید کلاهش را از سرش برداشت و زخم کنش نمایان شد وقتی فنزو علت اون زخم رو پرسید کنلر باز هم چیزی نگفت. چرا که نمیخواست شاهزاده به ملکه بدبین بشه. شاهزاده فنزو چند ماهی در کنار اونها موند و بعد تصمیم گرفت به کشورش برگرده کنلر هم نامی به مادرش نوشت و به فنزو داد که اونو به مادر بده. اون تو نامه نوشته بود که مادرش به سرزمین لانترلیس بیاد و با پسر و عروسش فنزیا زندگی کرد افسانه زیبای آهوی جادو شده رو براتون نقل کردم از مردمان سرزمین ایتالیا برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایتالیا گردآوری خانم آن مکدانل با ترجمه از رزوان خرمیان افسانه ها به زندگی شباهت دارند اما خود زندگی نیستند و ای در خودشون دارند که در همه دوره عمر از کودکی تا پیری آدمی رو به طرف خودشون میکشونند هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراساز سید فری برز نور نوربخش اجرا مهران دوستی صدا بردار بیرامی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده نیدیگر بدرود